چرا روزنامه خریدهی خبر جدید دارد؟ انتخابات مجلس نزدیک است. می خواهم بدانم کاندیداها چه کسانی هستند. انتخابات مجلس در چه زمانی است؟ اسفند ماه. مردم همه شهرها برای خود نماینده انتخاب می کنند. هر شهر یک نماینده؟ نه. هر دویست و هزار نفر یک نماینده. مثلا تهران سی نماینده دارد. مردم هر شهر کاندیداها را می شناسند. بله، معمولاً مردم کاندیداهای شهرشان را میشناسند. چرا کاندیداها تبلیغات نمی کنند؟ از هفته بعد تبلیغات شروع می شود؟ همه می توانند رای بدهند؟ خانمها، آقایان؟ بله، خانمها و آقایان از هجده سالگی می توانند رای بدهند حزبهای مختلف هم کاندیدا دارند؟ بله، حزبهای مختلف هم چند کاندیدا به مردم معرفی می کنند